اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین و هو خیر و موفر و معیم یک سلوات تقدیم کنیم به محضر متحر محمد و آل محمد ادامه بحث تروج صفحه دیویست و سی و دو و چزا ترکل و واجب امدن رچنن کانه ام قیرهو و فی اطلاق ترچه علا ترچه ترچه اللذی هوا فعل و زده و هوا الواجب و نه اون مند تجفز خب ببینید بحث ما در تروچه این تروچ رو بفهمند من یاد داشت کنم قصل خامس قصل خامس رو یک چی بود امنیتر؟ مامر آنها که در گفت و تر چه ترمین یا ترچه تامین؟ تروچ. خودش یا ترمین یا ترچه تامین؟ تروچ. ترچه تامین. با گفته آیا خودش سعی توضیح داد. گفت ما یا ترکو. چی یا ترکو؟ تامین یا ترچه تامین؟ بوده ترمین یا ترکو. پس تروچ یعنی اون کارهایی که باید ترک بشه ود. خوب. پس دومیش تحمیم بود بعدی فردیش همین یک کلامی تن بکنید درسته؟ خیلی فردیش سه شما هم دارید در نماز واجبی رو ترکنید امدن لضای قید امدن همونجا باید داشته باشه ببینید داره ترکل واجب امداره آره پس واجب رو نباید عمدن ترک کنید حالا چون من میخوایم تروج رو برای شما بشماریم چی بگیم؟ چی بگیم؟ نماز بگیم تر. ترک چی؟ نماز بگیم ترک از واجب عمدن آها ببینید یعنی الان این مواردی که ما داریم میشماریم تو فصل پنجم برای شما اینا بد هم درسته؟ به نماز حرف بزنید بده به نماز آمین بگید بده باتر می کنه نماز رو باید ترک کنید این رو یکی از که تو نماز بده اینه که واجبی رو ترک کنید درسته؟ ده. پس این هم می دویزید ترک و تر واجب نه باید ترک واجب داشته باشی شما می گیده آما یه نمازی خوندیم الحمدلله توش دو سه تا کلام بود آمین بود دو سه تا ترک واجب بود خب این باتر میشه مشکل دیگه لذا باید بگیم، نه، هیچ کدوم از اینها نباید باشه تروج شامل ترک واجب هم میشه پس و کذا ترک الواجب امدن بعدش رو نگاه کنید، بارد شهید اول رو او اهد بلا، ترک حالا شهیدستانی تجول او ترک و اهد الارکان اون دیگه، امدیش و حتی سحویش پس اینم هم براتون چهارومین ترک ما ترک رو این دیگه چه عمدی و چه سحبی اما ترک واجب عمدیش خود مطلب حله در نما چه واجباتی داریم چه نباید ترکش کنیم چه رکنه چه غیر نوچ واجبه دیگه باید حتما انجام بشه مثلا رکو است که باید انجام بشه ترک رکو نباید داشته باشه اما چون رکنه یه مطلب دیگه توش میاد که سحون هم حتی نباید ترک اما تشهد سلام قراعات اینها واجباتی هستن که نیستن اینا رو اندن ترک نکن اگه نمازت تموم شد دیدی اه یادت رفت اون باطل نمیکنه. حالا بعضی وقتا عیبی نداره باشه برو بعضی وقتا نه یه جبرانی باید انجام بدیم مثلا قضای تشهدی قضای سلام چیزی باید انجام بدیم خیلی خوب و کزا ترکل واجبه عمدن رچن کانه ام غیرهو حالا یه مطلبی را آه شهید سانی اینجا تذکر میده. اون مطلب اینه یه من نگاه نمی حید اول رو اگر دبارت شما کنار هم بذاریم فصل پنجم چی بود؟ تروچ این ترچ رو سر هر از این ها بیاریم هرچه مامر هر ترمین ترچ ترچ واطب درسته؟ آمین رو تحت کنید یعنی تو نماز باید آمین رو نگید ترچ آمین ترچ کلام ترچه قهدهه ترچه خنده و ترچه به برای دنیا مثلا حالا همون ترچ رو که تو عنوان فصل داشتیم ترچه هر دون از این ها سر این سب رو میبیاریم میشه ترچه ترچه واجه من فیده برای اینجوری ترچه ترچه واجه ترچه ترچه واجه همچی انجام یعنی انجام واجبات یعنی شما تو نماز باید واجباتی که اونجا شمرده شده انجام بدید اینو شهید اول به جای اینکه اینجوری بگه بگه واجبات نماز رو انجام بدید اومده گفته ت... واجبات نماز رو ترک رو انجام ندید ترک کردن واجبات رو انجام ندید هل علی محمدی دبید؟ به جایی که بگه انجام واجبات نماز لازم است، میگه ترکه ترک واجب در نماز لازم هست یکی دیگه هر دوتا شکل مونتا شهید سانه میگه این تحبیر توش نوعی تجوز هست تجوز هست یعنی توش یه نوعی مجاز هست یه نکته هم بگم تا اون عبارت براتون روشن بیشه آقا واجب انجامش انجام واجب زدش چیه؟ میشه؟ ترچ واجب زد قضا خوردن چی میشه؟ ترچ قضا خوردن ترچ بر سر یه فعل بیاری میشه زدش زد نشستن میشه ترچ نشستن پس ترچ بر سر یه فعل آوردی میشه زدش توی بارد چون داره این داشته باشیم خب آقای محمدی جمعن نیکن این نکتهی چه شهید سانی الان میخواد بگه تا من بخونم عبارتش شهید سانی میگه آقا جان شهید اول که شهید اول که, تر. که گفت ترکه ترکه یه لسه با من باشید شهید اول چه گفت ترک ترکه واجب منظورش همون انجام واجبه ولی این مدل حرف زدن چیه؟ تجاوزه حالا شهید اول برگردیم همون جمعه رو تکرار کنم شهید اول با حجت آهسته شهید اول که گفت ترک ترک واجر دو تا ترک ترک اولیش کدومه ترج دومیش کدومه ترک, کدومه؟ ترک, اولی، ترک ببین؟ ما تو امارت شهید اول دو تا ترک داریم یکیش تو عنوان بود تو روچ یکشم همینجاست که نوشته و ترکل واجب حالا ترکه ترچه واجب چه مجاز هست این ترچه ترچه واجب این اولیه کدومه همون عنوان است یا همین که اینجا آنانو برد اون عنوان هست. هست ترکه واجب هم که همینه که اینجا برد خیلی خوب با این توضیحات به نظرم اوالت براتون روشن بشه ببینیم وقی اطلاق ترچه اطلاق ترک علا ترک ترک اطلاق ترک بر ترک ترک ترک ترک یعنی چی؟ ترک ترک یعنی چی؟ ترک کردن رو ترک کن یعنی چی؟ انجام بده دیگه انجام بده الازی هوا فعل و ست و هو واجب واجب رو باید انجام بدی دیگه پس واجب رو باید ترک ترک کنی یعنی انجام بدی حالا شهید اول برای واجب اون اومد گفت ترک واجب رو باید ترک کنی ترک ترک رو در حال که به جاش می واجبات نماز را باید انجام بدهید مثبت میگه گفت ترک کردن واجب رو باید انجام ندهید اینجوری گفت و اطلاق ترچ بر ترچه ترچ اون ترچه ترچی چیه اللذی این اللذی رو صفت برای ترچ بگیریم یا اد ترچ مضاف یا مضاف من لیه سفت صفت مضاف یا مضاف من لیه ایه گفتید برای مضافه دقیق کنید اینه باید, باید یه خود دقیق کنید بعد از کلاس هم باید دقت کنید ترک ترک اون ترک ترچی که میشه انجام زد دیگه ولی خود ترک انجام نیست متوفر شدید؟ ام. الان چرا دارم میگم این هو فعل و زد صفت برای ترک مضاف نه مزافرنله چون اگر صفت ترک مزافرنله بود یعنی صفت اون اد ترک بود اد ترک به معنی انجام زد نیست که ترک ترک به معنی انجام واجبه پس این الازی رو روش بنویسید صفت برای ترچ اولی اد ترک یعنی چی؟ اد ترک ترک دومیه یعنی چی؟ ترک اد ترک اه ها ترچ واجب پس روی اد ترک بنویسید ترچ واجب ترچ اول هم که همون انجام واجب میشه چرا؟ چون ترچه ترچه دیگه الذي هو فعل و, و هو الواجب نو اون من تو نزید من نگام کردم نوشته بود به علاقه سببیت چطور علاقه سببیت بین انجام واجب و ترک ترک واجب سببیت و مسببیت هست بگو اگر من ترک کنم ترک کردن واجب رو سبب میشه چی بشه واجب انداز میشه یعنی انجام دادن یا برعکس سبب طرام اون میشه سببه هر چه سبب تر, تر چه حالا می شاید بشه هر دو طرف رو سبب یعنی در واقع چه یکیه ولی شاید بشه, لازم بشه مرزوم گرفت لازم بله لازم لازم دیگه حالا دیگه لازم ملزوم هستن سبب و مسبب لازم ملزوم هم نه اصلا كل سبب و مسبب یا لازم ملزوم علاوه بر سبب مصدب دیگه فوت کرده علاقه لازم مرجومی اگر سبب و مسبب باشه هم سبب مسببی میگن دیگه و الله خود سبب و مسبب من لازم هم لازم هم مرجوم همون دیگه اگر شما سبب میدونن برید اگر شما سبب رو دیدی حتما مسببش هم هست دیگه لازمه وجود سبب وجود مسبب منتهى وقتی قشن سبب و مسبب رو میبینیم همینو رو میگیم دیگه نمیگیم لازم مرزوم چون لازم مرزوم اهمه همون سبب رو به قشن روشن بشه مطلب چیه حالا اینجا گفتم دیگه سبب و مسبب چه ذکر مسبب کرده ولی سبب رو قصد کرده یعنی سببش انجام واجبه سببش انجام واجبه وقتی انجام واجب رو انجام دادید سبب می شود تا ترک ترک واجب بره خیلی خب اینم از این بر چون نظر من این منظور تجفز اونجا حتما اون نوع بلاقش نباشه بلکه نوع آمش یعنی من دو حالت عادی باید گفتم انجام واجب حالا آمدن یه نوع دیواری کردن که آمه خیلی با خاش در ارتباط نیست مثلا ببینو تجفزی رو خودشون به درف آمه سوار منشات ما فقط از عامی چیه؟ یعنی یه حالا یه آمی یه, یه متعارف, متعارف, متعارف بگو، آره. ببینید. شما انجام واجب یک چیز اثباتی دیگه، یه چیز وجودیه. ترک یک چیز ادمیه. الان ما نشستم اینجا نشستیم این وجود وجودیه ولی ترش ایستادنم انجام دادیم اون ادمیه خب حالا اول شما چی باید بگیم اینجا باید بگیم که شما نشستید یا بگید اینجا ایستادن رو ترک کردید خودمون باید بگیم وجودیش این شما نشستید بله ملازم است با اینکه ایستادن رو ترک کردید حالا اگر اون رو بگید به جای این میشه تجاوز اینو میخواد بگیم حالا این الهمی هم میگه میگه منظورش از این تجاوز درسته در ظاهر تجاوز یعنی همون مجازات، مجازات بلادی ولی میتونیم به این معنا بگیم که اصلا اینجا این مجاز نیست به اون معنا. یعنی استعمال شده در جایی که نباید اینجوری استعمال میشه بله. مثلا شما تو چینت توی صومه داشتین قضیه رو. تو که بود, تو بود؟ فلان, فلان, آره، آره. فلان. آره. بود از آره اون مفترات. درسته. خیلی خوب میشه همین خط رو دوباره هی طول داد بیشتر توضیح بدن ولی دیگه بسه دلسته خیلی خوب خدا رحمت کنه این بزرگان فوقه ها رو ولو چیز اوترک احد ال خمسد تا خمسد ته هزو چه فوقه هاست اوترک احد ارکان الخمسطه ولو صحبه خب ترچه بعدی آجان باید ترچ کنید ترچ کردن روچن را تو برای همینجا هم هم, جمع هم بس میاد. ترچه ترچه باید پدرش رو بیا شاید شهید دیگه اینجا واردش نمیشه ولو صحبه حالا از اینجا یه مدت بحث ارکان رو هم، با هم خواهیم داشت و هیچ نیت او روش نیت اگر شما بعد از نماز بگید که اه، یادم رفت نیت کنم یویش کن نداره دوباره بخارم. چیزی میگی ول قیام اگر بعد از نماز بگید که آقا من قیام یادم رفت یویش کن نداره دوباره بخو مثل ترفنگو که آقا من یادم رفت فلان سواره بنیسم یویش کن نداره نورشونی فلان سوال هم نیادم رف می‌میشکنم و اون هم نیادم. اون چیزی هم میشه یه چیز کلمه میشه دیگه چیزی میشه. و تحریمتو تو تق... تحریم یعنی چی؟ نهتراب. اون تجربه تو لیکن. تا یش می‌دونی چیه این تحریمت یک مرد دیگه یک و رکوع او رکوع هم هم و سجده هم. اگر بعد از نماز بگه یادم رفت یه سجده انجام بدم چی میگی بیش؟ میگه اشکال نداره ده. یه سجده اشکال نداره دو سجده اگه گفت یادم رفت دو سجده پشتر هم رو انجام بدم میگیم اونجا دوباره برده لذا شما داشته باشید روچن پنجم ما دو سجده با همه من اونجا گفته فلیصت بلا اما احداها ما فلیصت روچنن علل مشهور یکی از اونها روچن نیست دوتاش با هم روچنست علل مشهور ذوطه اینجا اگه نگاه کنین گفته برخلاف عمانی ابن ابي عجيله عمانی هست اگه اشتباه نکنم ولت و حالا من نوشتم کلینی منتظر روایت شو بعد ببینید ببین کلهنی روایت تک سجده رو یعنی اوورده چه جوری بوده اینو ببینید تا حالا این رو گفتیم تمام شد تروچ الان تمام می شود. دیگه باید می رفتیم اگه تجه چیز دیگه ای هست بعدی بعدی رو می گفتیم. ولی اینجا یه بحث پیش میاد. اون بحث اینه چه معن روچن بهما یاکون و مرد شود و هو یاست ای فواته به فوا ها. این یه اشکاله. چهیده ثانی اشکالی رو مطرح میکنه احتمالا بوده دیگه این اشکال بوده یعنی عبارات اینجوری نیست که اولین بار گفته بشه احتمالا این از قبل بوده این اشکال چهیده ثانی مطرح حالا شاید هم اشکال خودش نمیدون اون اشکال اینه یه لحظه من دگاه کنید شما میگید روچن پنجام چیه؟ یک سجده یا دو سجده دو دو با هم دو وقتی روچن شما دو سجده با همه یعنی خدا الان نگاه میکنه میکنن فرشته ها نگاه میکنن ببینن شما نمازت رو با اون دو سجده به جا بردی یا نه میگن دو سجده روچنه خب من از شما سوال میکنم اگر دو سجده با هم روچنه است من یه سجده شو به جا بیارم یعنی روچن رو به جا نه. نه دیگه پس فراموشی حتی یه سجده باعث میشه که چی بشه رکنه انجام بشه یا نشه؟, نشه نشه دیگه پس نماز باطله اگر سهوان یه سجده رو ترک کردید نماز باطله درا چی پس آقای شهید اول و ها شما میگید رکنه دو سجده معنه این دوستش من یعنی این مجموع این مرکب رکنه و مرکب و مجموع با جوزش هم منتفی بشه با انتفاع جوزش هم اون مرکب منتفی میشه دیگه پس قاعده شو داشته باشیم انتفاع المرکب یکونو به انتفاعی کلا و انتفاع جوزهی حالا اینجا انتفاع جوزش شد مرکب میپره دیگه مثل که من به شما بگم که آ من آب میخوام آب هاشتو او شما یه کپسول هیدروژن میاد میزنید میگید آخو هاشتو او مگه نمی آب نمیخواستی خب این هیدروژنش اکسیژن شما پیدا نکردی میگید من آب میخواستم یه جزش هم بره دیگه آب نیست آب نیست که کلن نیست هیچی یا یه جزش هم نیست اون مرکبه نشد که دیگه. امام ها رو دوازن امام ها رو ما باید معتقد باشیم حالا یه وقت از یه چی میاد بگیرم اصلا کلا به امام ها هیچ کدوم اعتقاد ندارم مثل آمه مسلمین با در کل مسلمین میگن ما اعتقاد نداریم به همون چیزی که باید اول به همون اعتقاد پیدا کرد یا یعنی همچه یه میاد بگیرم من تا امام هفتم قائلم تا امام نمیدونم... ششم قائلم تا زید قائلم مثلا برده میکنه شما مرکب رو نگه دیگه شما اونی چه خدا میخواست دیگه نیستی حالا اینجا سجده تاین ما با هم رجنه شما چه یکیش رو نیاری چه دوتاش رو نیاری روچ رو نگه نماز باید باطل باشه پس این چه تعبیریست شما میگید که با یک سجده سحوی اگر فراموش شد نماز باطل نمیشه در حال که دو سجده با هم رجنه اشکال شدی؟ خب الان ما داریم به که بریم گوییم بحث کنیم که روچن دو سجده با هم است یا نه تو روایی و تو اینا اشكال باید, باید این اشکال میشه در مورد اين بحث مان روچن به ما یکونو مرد چبن روچن به دو تا سجده که همیه هم الان شایده اول گفتی که و سجدتان مان وقتی دو تا سجده مان روچن شماست یکونو مرکبن دیگه پس درسته؟ و هاوه مرکب بودن روکن یستد ای فوات روکن را به فوات سجده. یه سجده فوات ها بزنید به احداه ما یکی از دو سجده فواته همه داره؟ فواته اون قلعت میشه اصلا خواهیشون راشته فیلوسه به نه تو پایین نسخه ما هم به ثبات احتاهام. ما. تو میدونم بخونونو چی نوشته. ثبات ایک تو احتاهام دیگه، یکیش دیگه. میگه ثبات هوا. درسته چریمی؟ ثبات حما داره. خب، نه. اون وقت اشکال پیش نمیاد که. اگه اون نسخه رو بپذیریم اشکالی نیست که درسته هر دو سجده بپره روچن پریده پس چرا بعدش میگه با اتزارون مصنف و انهو یعنی از, از, از, از, از, از, از, از این اشکال مصنف جواب داده پس اون, اون اهدا اه به جای چیز فواته اگر او الان من به ذهنم میرسه که خیلی ناشیانه بود. اون بوده اون ناسخش هرچی بوده اشتباه کرد خیلی خوب آقا پس این تیتر بزن اشکال شهید سانی اعتذار بنویسید پاسخ شهید اول به این اشکال بعدش رد کردن همین پاسخ شهید اول توسط شهید سانی پس اشکالو گفتیم شهید اول جوابی میده شهید سانی این جواب رو نمیپذیرد و اعتذار المصنف و, و اعتذار المصنف عنه روش بنویسید جواب اول شهید اول سه خط پایین تر یه وبعنه دیگه هم داره دیدیم اونم ببینیزی جواب دوم شهید اول در ذکرا بعد برید پایین بذارید اون استخانبندی عبارت براتون روشن بشه برید پایین فیه ما مره فیه ما مره جواب این پاسخ دومه آ جواب پاسخ اول شد رد شدیم. جواب پاسخ اول همون برگردید بالا خط دوم خروج عنل متنازر. و میدید پس بندی این عبارات چند خطی برای کاملا روشن باید باشه. دوباره میگم تون میگم چه کنید درست نمشتید. و اتظار ببینید اصلا این مه. مه ام اشکال شهید ثانی بر روشنیت دو سجده مه. پایین و اعتزار المسنف جواب شهید اول در ذکره به نه پاسخ اول خروج اون علم و خط پایینش جواب همین بعد برید پایین تر دو خط پایین تر و به ان انتفاع الماهیه اون پاسخ دوم شهید اول در ذکره هست فیه ما مرهم جواب همون پاسخ دوم حالا اینا رو بگیم تا ببینیم بیرسیم بقیش هم بگیم بینه شهید اول در زکراه گفته که آقا یه بس من نگاه کنم اینجا رو دیده اینجا رو نگاه کرده که من اگر اگر سجده ها رو انجام ندم سجده ها رو کلن انجام ندم هیچ چیزی از سجده رو انجام ندم اون موقع باطل میشه خب اما اگر حتی یه سجده یه سجد انجام بدن نماز باطل نمیشه دیگه حکمینه اینو داریم اینو نمیشه دستش زد اینو نمیشه خرابش کرده شهید اول گفته خب حالا چه اینه؟ پس معلوم میشه که روش نماز چیه؟ مصمامیست وجود یعنی تا یه سجد تو نمازت حاصل شد دیگه روش رو انجام دادی نماز دیگه باطل نیست پس دیگه مشکل پیش نمیاد خب این جواب شهید اول رو نرد کنی میخونم برد نهت کنید ببینید وقت زارال مصنفه انحف زکره به ان را چنم مصمم از سجود ولا یتحق قل اخلالو به این مصممه سجود بهی الا به ترچه ما مع وقتی دو سجده رو کلا نیاوردی، دیگه مصممه سجود هم حتی نداریم اصلا سجده نداشته باشیم به اینه که کلن سجده ها رو ترک کنیم اما اگر یه سجده به جا دومیش یادت رفت خب مصممه سجودو که انجام دادی و همین روش ما هم همینه مصممه سجوده پس حل مشکل نداره اون حکمی هم چه گفتیم کاملا سر جاشه پس ما حکم پطلان نماز با ترک دو سجده رو همه قبول داریم اما با ترک یک سجده باطل نمیشود اینو همه هم قبول داریم سرش هم اینه شاید اول اینجا میگه سر نشینه چون روج مزممه سجوده با یه دونهش مزمای سجود حاصل شد روج حاصل شد نماز درسته خب این جواب خوبه شهید سانی میگه شهید اول خدا خیرت بده اصلا اشکال ما به خاطر این بود که شما روج رو چی گفتید دو تا سجده با هم نماز ما سجود موسمای سجوده خب اون اشکال اصلا مارد نمیشه که شما از محل بس خارج شدید لذبه یه که خروجان ان المتنازع شما محل تنازع رو این متنازع اسمکان محل تنازع رو ازش خارج شدید چون خودش حالا شاید اول می که باش من همین اصلا اصلا نظر من همینه که روچن همین موسمای سجوده با بابا خودت گفتی نه خودت گفته ل موافقت ای ال کونه ما معن ها و رو نه نه. شما خودت در زکر اصلا روی موافقت برنوید در زکر موافقت دارید بر اینکه دوتاشون با هم جفتشون با هم روست. اولش رو با این مبنا شروع کردید اومدید اومدید, اومدید ه عوض رو دفعه وسطش به اینجا رسیدیم که ممرات هیچ دیگر است. خب این اشکال خروج از محل برس خودتون میشه خیلی خب حالا که خودتون در ذکره میگید که دوتاش با هم رجنه است و هوا یستر زمال فواته به احداه ما این مستظم این است که با ترکیه یک سجده هم فواته روچن حاصل بشه یستر ز فوات فوات روچن به اهتاهم ما اهتاهم ما یعنی به ترجه یه سجده چرا خود همین چرا چرا یستر ز خب چرا سجده تا بگیم اینجوری میشه, بگیم؟ اینجوری میشه؟ چون؟, چون چون یک کلمه یک کلمه اختلال جزء موجب مرکب آره دیگه چون مرکبه دیگه مرکب. یه یه هم نیاری دیگه نیاری دیگه چرا منظر که مصموی سجود هم بگی بزنی اچگاه هست چرا مصموی سجود جمع و یک سجده دیگه اتصال نمیشه چی؟ دیگه بگه سجود هم بگی برزنی مشکل هست چرا تر نمیشه چرا؟ مصموی سجود جمع و یک سجده که سجود دیگه جمع نیست مستره سجود مستره رحمی ادبیاتت برای ادامه کارت چمه هایی خوده برای سجود آره لغت اینا لغت اینا مراجعه کنی آره سجود مستر مسمای سجده کردن نارک است این هم یکشو انجام داد خب مزما انجام شد دیگه دومیش یادش رفت میبیند مزما شد دیگه پس باطل نیست آره نه فعول ما زیاد مثل ظروف دروست ولی این سجوه آره گول زننده هست آره چی گفتید؟ مثل همون روکو سجوه؟ مثل همون روکو آره خیلی خواهد و ما ازالکه یستلزم و بطلانه ها به زیادت واحدتن لتحققل مسمام اینم اشکال دوم این جواب شهید اوله یعنی شهید اول جوابی که داد خیلی جواب پدی بود یه اشکال دیگه هم تازه بهش وارده اونم اینه آقای شهید اول دقت کنید ببینید منو نه نمیسید ببینید اصلا باش مبناد شما رو میپذیم میگیم شما اصلا مبرات همینه چه روچن مصمای سجوده حالا یه نفر اشتباهی یه سجره اضافه به جا بیاره مسمای سجود هست یا نه؟ آه. هست یا نه؟ آه. بله. دو یه سجده اضافی، یه دونه نه. سجده نه دوتا یه سجده اضافی. ما میگیم اگر یه نفر اشتباهاً دو سجده اضافی به, به جای بیاره، اون باطله چون روشن اضافه شد دو. تا. اما طبق حرف شما مسلمای سجود روشن باشه، یه سجده بتا آورد، روشن اضافه میشه و باید باطل میشه. در حالی که خود شما هم قائل به این نیستیم. پس مسمما های سجود نمی تونه روچ باشه آقا شید اول. اولا نمی تونه چون خودتون دارید همونجا اونجا میگیید من دوتا رو با هم روچ میدانم. سانین اگر مصماه رو بدونید م میشید تو یه سژد اضافی هم قیلا به بطوان بشید که هیچی قیر نیست.دو داشته باشیم اینجا یه سش اضافی رو داره میگه. ها. از تو ب ما این که یه سجد کم بشه ص اینجا یه سش اضافی رو داره میگییم که این حرف شهید اول رو ردش کنید بعد برگردی به هم بحث خودمون. خیلی خوب و من ازال که این روش بنویسید پاسخ دوم شهید سانی به شهید اول یسترزم و بطلان سلات را به زیادت واحدتن به زیادت یه سجده واحده روش بنویسید سهون ها صحبن. چون عمدم باشه که مشکل نیشید چرا؟ چون روچ اضافه شده لتحقق المسمم مسمم روش بنویسید که سجده واحده است و طبقه نظر شما روچ نست روچ نضافه شد باتر میشه. شد ولا قائل بهی ایش که قائل دیست خود شما هم قائل نیستی تمام یه سوال بیپرسم همه با هم جواب بید این و به انتفاع ماهیت چیه؟ اعتزار دوم شهید اول اعتزار دوم شهید اول از اون اشکال یعنی حاسخ دوم شهید اول به اون اشکالی چون بالا اول کاری گفتیم. شهید اول گفته خیلی خب بابا مصمه سجود. حالا چرا احسابانی شدید؟ باشه. مصمه سجود رو نمیگم روچنه. ولی یه حرف دیگم دارم. و به انتفاع الماهیت هنها غیر و معسر مطلقا و الا لکان الاخلال و به عضو من اعضاء سجود مبتلا. بله مؤثر و انتفاع ها رأس هم فکر نمی از عبارت خیلی سردر ورده باشه چی میگه از سر روش فکر کردید اگر رو عبارت ها فکر نمی کنید دستان همینجور میاد کلاس رو میدید, این خیلی, هدر میدید خیلی هدر میدید باید حتما روی کار کنید تا یه مدار تحویت شد ببینید آقای شهید اول میگه باشه, باشه. روچن همون دو سیسته با همه ولی این روچ از اونایی نیست که مرکب با جدا شدن با حذف شدن با عدم وجود یه جزش هم بپره. بلکه این از اون مرکب که کلش اگر نبود میپره. جزش اگر نبود نداره. میگیم آقای شاید اول برمگم چی چیزی میشه؟ اگه میشه چی چیزی؟ میگه آره ببینید مثلا شما نه الان خودش خودش الان مثال میزنه برای اینکه تقریب بزنه میگه الان تو همین سجده اگر بگید شهید اول داره میگه ها دفاع میکنه از هم. میگه الان تو همین سجده اگر شما مرکبی است دیگه درست با پریدن یه جزءش هم کلش اگر میپره حالا یه نفر تو سجدهش به جای که هفت عضوش رو زمین بذاره شش عضو بذاره. یه درسته. انگشتش هست و پارش رو نذاره رو زمین. کلن میگید که آقای شاید سلام کلن میگید این روح کلن منتفی شد. دو سجده تنگ با هم نیامد چرا چون یه جزش خراب شد. شما بگید جواب بدید. میگن اینو؟ نمیگن. یعنی میگن با اینکه این سجده تنگ یه جزش الان اخلاق وارد شد. شست پار رو نذار شدن ولی اشکال نداره خب شهید برمی خب پدر بیام رو ما هم همین رو میگیم سجدت این با هم روچ نست تو شست دو, دو تا نذاریم دوتا دو اصلا یکی از سجده ها رو نیاریم اشکال نداره دو تاشو با هم تخت کنید اشکال داره اینا جواب دوباره میشه ای این جواب این نور بهتره حالا ببینیم و به انم انتفاع ماهیت در اینجا قایرو مؤثرن مطلقن میدونید من اینجا چه کار کردم مؤثر مطلق رو توی گیومه گذاشتم مؤثر مطلق یعنی میخواد بگی که انتفاع ماهیت در اینجا مؤثر مطلق نیست چه ببین مؤثر مطلق یعنی این یعنی ماهیت هر چیزی ازش کم شد دیگه کلون ماهیت بپره مثل که یه عصب یه ماهیتی داره دیگه حالا یه عصبی من دومش نبود پس دیگه این عصب نیست و با عصبه دوم نداره دیگه حالا انجام سزده تن با هم نه اگر یکیش یادش رفت همون روچ هست ولی یکیش نیست دیگه مؤثر مطلق بودن یعنی که هرچی از ماهیت جدا شد دیگه ماهیت منتفی باشه میگه نه این نیست غیر و مؤثر مطلق پس مطلقا حتما قید مؤثر بگیرید داخل دیو منه که خ و الله این و الله شاهده شاهده برس حرف خودش میگه و الله شاهده حرف ما اینه و الله لکان الاخلال به عزر من اعضاء سجوده مبتلا. یه عذری از اعضای سجود رو اگر نیارید مبطل باشه کل نماز بپره میواد در چه جنوری پس مؤسس چیه آقای شهید میگه نه پس مؤسس اینو بگیدید و مؤسس اوها رأسن کل این سجده رأسن منتفی بشه رأسن رأسان یعنی کلن یعنی هیچ سجده ای شما به جا نیاوردین نه یکی نه دوتا اون موقع نماز باطله یکی شما به جا نیاوردین ایرادی نداره ماهیت منتفی؟ نمیشه چرا؟ چون مؤسس مطلق نیست انتفاع ماهیت یه دیکش رفت کل ماهیت منطبی بشه اینجوری نیست خب این از این مامر این جوابشو بخونیم میترسم نرسم فیه مامر این جواب شهید سانی شهید سانی میگه دیگه جواب رو گفتیم دیگه فیه مامر شما میگید که آها جوابشو کجا گفت جوابشو کجا گفت جوابشو هم بالا گفت دیگه آره دیگه تو همون توضیح که گفت روکم وقتی مرکبه ما اصلا چریمی تو گفتی اصلا این یه قاعده عقلیه قاعده عقلیه که مرکب مرکب نیست وقتی اجزاش نباشه همون آب اکسیژن هیدروژن شما بگید نه این از یه که آب آبه حتی اگر اکسیژن هم نباشه این چه آبی عقل خلاف این رو میگه پس همون چیزی که بالا توضیح دادیم مامر یعنی این روش برسید که مركب عقلا بدون اجزاش مركب دیگه نیست این اشکال بعد یه نفر اشکال میکنه چه میگام شاید سانی پس همین الان تو سجده شهید اول گفت که مثلا انگشت شستش رو نزاره اون منتف... منتفی نمیشه میگه بابا اونو چرا میگی اون اصلا یه بس دیگه‌یه این توضیح میدید میگه فرقو بین الاعزا پس این ولفرق رو عطف کنید بر اون مر یعنی فیهتون این اشکال هست ولفرق و بین الاعزا غیر الجبهت و بینها اشکال دیگر حرفیشون اینه که اصلا بین اعزا و بین پیشانی فرق هست انگشت شست پاتو نظری در ماهیت سجده تاثیرگذار گذار نیست که به امنها واجباتون خارجتون ان حقیقت سجود چه انگشت تو روز زمین بذاری یا نذاری این در ماهیت سجده داخل نیست. اینا یه واجباتی است که خداوند متعال فرموده موقع سجده باید انگشت تو رو زمین بذاری. مثل اینکه بگه موقع سجده یه چیزی بگو، وقتی گفتن که به ماهیت سجده ربطی نداره. لذا من اگر ذکر سجده رو نگم، سجده محققه. پس شهید اول نگو وقتی پامو رو زمین نداشتم ذکر سجده رو نگفتم دستم رو برداشتم سجده پسش رو منتفی نیست خب نبایدم منتفی بشه چونها خارج از ماهیت سجده هستم بنده ها به این که این اعضا اعضای غیر جپه واجباتون خارجتون ان حقیقت سجود سجود مفرده ها دوباره ازمو کنم چه زکر و تومنینه. الان موقع سجده خدا فرموده است که تومنینه داشته باشید. خب تومنینه اگه نفر نداشت سجدهش اخلال نمیده که ماهیتش حل ده. نه ها اما در مورد جبهه آره. شما بخواستی مثال به جبهه میزدید. سر طرف سرش رو مهر نزاره اصلا. اون مقاردی هست چون این دخیل در خود ماهیت هست پس اون مولدای که شما اووردید گفتید جز از مرکب نباشه مرکب منتفی نمیشه نبایدم منتفی میشه چون نا خارج از حقیقت مرکب بودن ولم یزکور مصنف و بسته دیگه وقتا مونتم شد سلام با تو چستیم اللهم سلام این رویاتون باشه ما فعلا تو بحث همون ارکان موندیم اینه از یزکور دوباره بحثه ارکان هست، صفحه بعدم هم همینطور تا بریم به و چزال هده هست. برای جلسه فردا رو یه پیش بطاله بکنید. کلا تمام جلسه هم. بله؟ برای جلسه بعدی حتما پیش بطاله بکنید. این ترم بدون پیش بطاله. اگر سر کلاس بدون پیش بطاله اومدید بیاد به من بگید. بگید امروز من پیش بطاله نکرده بس هاچی خودم سخته این دو سه جلسه بایدی هم خود سخته شموع بروغم هست به ایچ عنوان قیبت محلی.